اللهم فرمان سلام بس راجب بود که معلوم در این کتابی که یا معروف شد و محور های ما در آدرس ادیا شد، فرودنده میهره بخش‌های متعددی از ما درباره رسائل خوجج و امارات و اصول عملی همانید هست شد که این عبارتی رو به عنوان مهنده و ایرانه ورده در این جدیدی که از فر فرمودن چون ارز کردم کتاب در صورت در اصولات رسائل متفرعه بود بعد به این صورت درامت و تختیم بندی شد و مقصود ند مسائلی بود که بعد پیدا شد به هر حال این تو ایوان اصحاب ما به این مناسبت بحث های نسبتاً فراوانی شده در همین تمهید مقدمه بعد می متعرض ایده از اونها میشه سعی می کنم چیزی بشه باز هم اختصار نسبتاً رعایت بشه از کردیم که مرحوم استاد قدس الله سره بحسب این کتاب دراستات که فکره نمیتونم بامینه سوارم خیلی فرد داشته باشه چند تا مطلب رو در این تمهید هر نوگن یک که حالا من شما رو گذاری می برای اینکه روشن بشه برهاد بحث از وقتی تا زیبی این که آیا بحث از وقت داخل در مسائل علم و یا داخل در مسائل کلابه از کردم که بعد از محکوم شیخ در این کتاب شفایه اشکال کرده که این بحث قد مسائل علم اصولیه اشتره مسائل کلام بعد مرموم اصطاق همون مطلب رو بگیری کردن فرموندن که مطلب اولیشون که بحث قد و جیه قد داخل در این علم نیست بعدم همون نقطه که من دیروز ارز کردم به ایار در علم و اصول رو ایشون به هم پرموندن که ما شراران ارز کردیم و این تعبیر رو هم از کریم از اونه این این قدس الله نفس نفس خوب و توضیفاتی داده شد بعدم ایش کنی خب اگر این باشه قرد کبرا واقعه میشه قرد به خود میدهگی مثلا قرد نماز جمه واجبه خوبی نه که میگه من مثلا قرد دارم به وجود قرد دارم به نماز هر چی که بهش قرد دارم پس واجبه نه قرده به وجود نماز و به اصطلاح ایشان در قطع تریقی واضیه قطع موضوعی هم درسته مثلا اگه فرض مایه بوله اون وقتیه که اولش تا فرض کنید نه از بوله واقعی مایه علل له میگه اون قطع موضوعی هم که لا نشه قیاس نمیشه اون با موضوعه موقعه مثلا میگه زید میگه علما رو اکرام بکن خب هرکسی عالم بود اکرام داده نبود نداره این توی به قیاس نداره مربوط میشه بکن. بعد متعرض این بحث شدن که قطع به نتیجه علم اصول یا به خود حکم فرعی تعلق پیدا بکنه پس از این جهد یک مناسبتی با شدت و مناسبت من مسائل علم اصول بعد از و آن و یا بقیه حسن هفیل استفرادم مناسبت که این استفرادم مثلا در صفحه بعد فرمودن ازا عرفت زادک فرقال بحث مقصد الاول باز هم بحث و مقصد اول که امور الهند خب خب و الهند خب خوب بودیم مقدم از سانی توی حجیز جای المقصد الاول لذایشون مؤسردن که بحث قرط باز به با عنوان مقدمه مبارس خجش دیار روشن شد تر مسئله چیه ما مسئله ارنان خجش داریم در اصول مثل خبر خبرواده مثل فرسونیم اجماع غیرزاده و این مثل بقیه هرخواست و مقدمه میخواد بحث و حجیت قد مقدمه بحث و حجیت یعنی افتادان میگیم قد این افتاد و حجیت بقیه اشراه هم اگر زن بود قد نبود با دلیل بحث و حجیت بیاد لذا پیشنهادیشون این است که مدحث قد که از مقاصد به اصلاح مباحث و حجر قرار بگیره مقدمه بشه این نمیشون به این تصویری که من عرض کردم نفرد بودن اما نتیجه نهایی اینه یعنی نتیجه نهایی این هست که این وقت از به عنوان مقدمه بحث و حجر قرار بگیره عرض کردم در, در کلام شیخ این اینطور نبود حالا خیلی بعد ایشون بیفرماید که بعد از بعض جهاد مناسب با علم کلام چون محیار مباحث علم کلام رو باحث عن المبدع و المعاد و استحقاق العقاب فکر محیار این می دهن هرچی که در باره و معاد و استحقاق و حقوبت مسئله کلامی است این بعض جهات مناسب هست با علم کلام البته نقطه مناسبت رو بیان نفرموندن شاید به اینجرد که اگه انسان قرط بدا کرد استحقاق و عقاب داره یعنی باقتش یه استحقاقه ها برده این خلاصه نکته اوله که ارزش وقت خوجیت بعد، به این معرضش این جایگاه نرده جایگاه وقت حجیف بعد، تو مواهد و حسول با مقدمه وقت قرار برده و که مناسبتی هم با کلام داره به خاطر مسئله استحقاقه و چون مبدعات که مبدع که رفتی به قصد نداره اون بحث استحاق و, و که اگر انسان قطعی به یک چیزی پیدا کرد اینسان رفتی داره اگر مخالفت با قصد خب ما چون بعد بحثمون رو از داویه دیگری شروع رو بکنیم فصل کرد فقط یک اشاره مختصر اینجا از رو کنم بعد بریم نقطه دومی که ایشون فرموندن اولا این ایشان یا دیگران نوشتن بخص قض داخل در اصول نیست البته احتمالا خودشون توجه داشتم و این ها شهنشون اجلای اصول توجه این مبنیست در یک مطلب دیگری این خودش اینجا مطلب نیست این مبنیست برای یک مطلب دیگری با که آیا ما حجیت قضیت رو ذاتی بدونیم یا اقلایی به اعتباری بدونیم چون مرمومه های خوبی در ذهنشون رو جهقت عقلیه عقل رو درد میکنه لذا ایشون اینجور بحث کردن یا بعضی کسانی که ذاتی میدونن، لذا این بحث رو ایشون مطرح کردن که این بحث در اصول نمیاد. اما اگر ما آمدیم گفتیم مثلا مقوله حجیت که اینجور توضیحش رو بعد اصلاح کرد یه مقوله اجتماعی یه پلیده اجتماعی است مثلا توی ذاتیت و عقلیت و مقلیت بایده. یه پدیده اجتماعیه. یعنی اگر انسان در یک کوهی در قاری در جای تنها زندگی کنه هیچ نیازی مثلا خودشیت نیست خودشیت یک که مثلا واقعیت بیفی نفسه باشه نیست نه یه امر اجتماعیه. وقتی جامعه جمع شدن بشر جمع شدن در یک جا اون برای اداره جامعه قوانینی قرار میدن اصلا مثل, اصل مثل مورچه نیستن که خود به خود نظام اجتماعی اداره بشه اون نظام اجتماعی نیاز به عقل داره تعقل داره نظام احتیاج به قانون داره این قانون رو با دقتم مراعات کرد به دقت به خاطر اینکه جامعه به هم نخوره نظم جامعه این منشه تولد حجیت شده مثلاً حجیت اصلا حجیت اساسا بر این محور تشکیل یافته حجیت غیر از جریع عملی مجرد به صورت ذهنی است اون جریه عملی مجرد بر صورت ذهنی هست. اون خودجیت نیست اون رفتی به اجتماع هم نداره اگر انسان یک شب مثلا حرکتی دید و برش روشن شد که ماره مثلا یا عقربه یا مثلا فیره یا گرگه نه همون روشن شده تصمیم میگه اون غیر از خودجیتی این دو تا با هم دیگه منچه خلقی این از هست و که یکی انبعاست و تحرک انسان از سوار زنیه است حالا برگیالاش خوبه و همه این ها میگیرون بحث دیگر است این یک بحث یک بحث خودجیت علمایه تجربی در طرف المقابل این بحث دومیه بحث اجتماعیست بحث قط اینجور نیست اینشالا توضیحش از خواهم کرد مثلا در علوم حقیقی قط خودجیت نداره اصلا قط محل کلام نیست مثلا یک فیزیک دان بگه من با ملاحظه دو مورد آزمایش یقین پیدا کردم که شیمی قانونی در فیزیک بود در طبیعت وجود. قلمای فیزیک قبول نمی‌کنه تو از دو مورد تایید کردیم. و من برای من این فقط این من حجته. مثلا مقوله حجیه یا یک مطلب نجومی یا فیزیکی یا شیمیایی یا ریاضی رو اصلا مقوله قد در اونجا اصلا جا نداره. جای صحبت مقوله قد. یا مثلا ارسطو این مثل اینطور گفته لذا من یقین دارم که مثلا همینطوره در دنیای علمی رو قبول نمی کنن مثلا قابل قبول هم نمی سر اینه که در دنیای امور اعتباری که یکیش هم قوانین بشریت یا قوانین الهی در اینجاها قط و جیت داره قط یعنی طرف میتونه بگه من قط داشتم و اون هم به حساب ارباب یا مالک یا حالا خدا یا قانون یا هر چی کرد اون وقتی نگاه بکنه که واقعا حالت قرد داشته و رو معذور میدونه حتی اگر قرد داشت مخالف باشه موافق باشه میگه خب تو قرد داشتی چرا نکردی بر فرض که مخالف باشه با واقع قطعش اون رو معذور میبینه یک نوع معذوریت میبینه پس مسئله حجیت اصولا یک امری نیست که ذاتی یا عقلی به این معنا باشه که آن تصویر کردن این حجیت یک است، یه مقبوله اجتماعی است یه پدیده اجتماعی است پدیده اجتماعی خواهی نخواهی فرم میکنن عوض میشن تکالیف فردی نصف به خدا رو بشه اجتماعیه؟ داره فرمون تکالیف فردی نصف به خدا بعد از مسئله ارتباطین قانون امون کسی تکلیف شد میشه قانون تا خود طرفه چه اگه تو باشه، کجا قشاشی نماز باشه؟ کجا نیست؟ تا درخت شه، پیغمبر بیاد. جامعه. عمر این فرع چی؟ پیغمبر بیاد. ها پیغمبر باز خدا بشه. در آخر چیزی شما تلصیر بکنید یک فرض خوب زندگی می‌گوا. مثلا می و مادر الان چه حال می آقا نشه؟ خدا. با خدا بد بشه میرسه یا نه؟ چجوری بفهمیم؟ خواب می‌بینیم. اون چه حجت نداره ولی شما. باید. اون هم نمیشه یعنی اگر تا اومد یک نظام تربی یا یک قانون یعنی یک مبدا قانونی تصیر بکنید پدر باشه دولت باشه اینا جامعه باشه، فراداد اجتماعی باشه، خدا باشه، اشراف باشه، احیان باشه، آلهه باشه، در طور تاریخ الا ماشاءالله اناوین من مبدع قدرت در تاریخ مستدر شده هر کدوم از این همه باشه یک باید ایک حسابی بشه همچون بودون این نکات یعنی باید یک اعتباری بیاد تا نیاد که اصلا من نداره. خب روشن شد انشاءالله داره پس ایشان شنهای خویه و جیهت به تعبیر خودشون که خواهد دانست عقلی میدونند یا به تعبیر شیخ حالا ک این دو تعبیری یکی باشن ذاتی میدونن یا عقلی یا ذاتی این بحث میاد الا اگر ما اما این گفتیم گاری نه چون امر است، ممکن از در یک جامعه یا در یک حزب در یک تشکیلات یا در یک شهر حتی قصر را هم حجت نکنند مثلا میگه شما به من گفتید که پسر شما به من گفت که گندان بخره و من از این را قرد پیدا کردم میگه نه مثلا خواهد از که این اینقدر بشه که انسان کاملا هر لحظه ای از طرف مقابل مثلا میگه من گفتودم برو نام بخرب میتونه فیلمشه بگذاره که اون لحظه گفت یا نگفت یعنی احتفال در حدی باشه که نیا اصلا قرد هم حجت نباشه به این معنا که میتونه خود واقع را مجهستم کن یا به خاطر یک جهاتی که جامعه زرف داره. یا مردم یک ذره پیدا کرد. میگم اگر شما روجعت بس خودی جواب بدید تا به اون رو آزمایش نکنیم و تا انجام ندی و تا تاکید نکنیم و تا مواد متعدل سوال و جواب نکنیم به اون کار نباید عمل بشه. غدی که صد درصد با وسایل متعارفی و مسائلی که در اختیار شما هست تضمین بکنید مطابقتش با واقع. اون قطعی که عین واقعه ممکنه مشکل نداره. چیزی نیست. این کار اگر بخوام بکنم جامعه بخوره این کار جامعه رو به هم میزنه یعنی به عبارت اونخرا هر که ما مثلا در کل علوم باید اولا ایمان به اصل وجود پیدا کنیم چون اگه وجود نباشه خیال باشه نفیدی فیزیکیه نشیم چیزی ما در مسائل اجتماعی هم هستی که وجود در مسائل علمی فلسفی زیر بناست یه زیر هم تو مسائل اجتماعی داریم به منزله وجوده یکیش همینه یعنی بنای کلی اقلاقی این شده یک چیزی که آخرین مرحله است یک چیزی که دیگه بعد از اونیست به قول قدیمی ها ما برای عبادانی قریه چیزی که دیگه بعد از نیست این رو به عنوان یک زیر بنا تو جامعه قبول بکن تا اینکه نظام اجتماعی برقرار باشه نگه از حجیت زادیه، نظام ممکن است توی یک جامعه اصلا قفم حجات نشه. میگه نمیشه یا حجت تعلم میگه نه نه ذاتی سنغ نیست ولی یک چیز که هست و اون اینه که عالبا حجت از یک جامعه به یک جامعه فر مثلا در یک جامعه ممکنه یه قول استاددار حجت در یک جامعه بگه قول مثلا خاصه عالم شعر حجت مثلا در یک جامعه بگه قول رئیس عشیره ولی استاددار نیست رئیس عشیره هرچی گفت در قوانین نافذ بود مثلا این ممکنه این به حساب حجت است این فرق این از این هم اختلال نظام لازم نمیاد خوب دقربه اگر گفت قول استاندار حجب نیست شما زنگ میدهد این برایات عمومی مجلس از قانون، از مجلس ساتون مشکل نمیدید نه جامعه به هم میخوره نه پیش میاد اگر بناباشه قد آخرین درجه است که برای عامه مردم پیدا میشه. حجت نباشه اختلال نظام لازم میاد جامعه به چون اولا از قط ما خوب دقت بکنید. ما از قرد کاشفتر نداریم اینها ظاهرن این مطلب را هم آهد کوی فرق ندار. این مطلب رو حالا بیشون بعد ما بگم در صفحه شیش فرمونه بلا یخوان نفی کلامشه خلقن بین مقام طریقیت قرد و مقام حجیتی این مطلب ایشون درسته این مطلب درست؟ درسته تا... کاشفیت قرد بلکه قرد عین کشف هست. این, ز... این واهمه کشف ذاتی نیز ذات قرده طریقیت عرايه کاشفيت کش اینها ذات قطعه نه اينكه ذاتي قطعه مثل حیوان نساز به انسانيت مثل خود انسانيت انسان اينها اومدن خال اين ترغابات خوبي صحيح نو صحيح خال شده خياز متن چون طريقيت ذاتیه مثل ذات شه کاشف پس بودجيتام ذات ذاتشه منو شد من اشتباه كردم حجیت یه امر اجتماعی یه تجربیه کلون دونت طرف این دولت بر مردم مردم بر دولت این اسمش حجیته این لازمه کاش لازمه کشف نیست لازمه طریقیت نیست لازمه مرعاتیت قصد واقع نیست لازمه شم نیست بله این چون دیگه اگر بنابراین بشه که ما به مراد شخص برسیم یا به تکریف برسیم دیگه از این واضحتر تر نداریم از قرد دیگه واضحتر تر نداریم نگر قرد حجت نباشه چون قرد گاغگاهی هم مخالفت می کنه مثلا جهل مرکبه به واقع نمیرسونه. به خاطر این مخالفت گاغگاهی ممکن از شهری یک کشوری یک قانونی یک گذبی یک گروهی این ممکنه ای استعالم ند دیگه آقا به قطعه عمل نکن اگر یک مطلبی هم قطعه کردی با دوبار سه بار چار بار تجربه پشت سر تجربه تا معلوم بشه متن واقعه این قطعه تو اشتباه نرسته جهد ما رکم این طور مشکل نداره که دو مرتبه تلفن کن سه مرتبه تلفن کن بیان که دیگه تلفن جازد ما روحات اومی بود نبود چهار مرتبه سوال بکن برو خود از م اگر میخواد در کل جامعه اجرا بشه جامعه بشری مختل می کنه چون هم همه کاراشو غلط ترک میکنن پدرش واقعا به اون اینو گفته یا نگفته حالا دو نفر شهادت دادن که پدرت اینجوری گفته میگه نه من واظوران پدرمو پدرش هم مسافرتا رفتم بشه به پدر, پدر, پدر رو کنه تو اصلاً از, از این زندگی رو به هم میزنه اختل چون ما کاشفی و کشفی بالاتر از اعته نداریم. ازار عمومی اعتباری هم حقیقتش اینه که این عنوان قانون، در این امر اعتباری که اسمش قانونه، حقیقتش وصول به اون مراد متکلم و اون اعتباری که متکلم کرده. حقیقتش وصول به اونه. ما به لحاظ طریقیات چیزی دیگه از اون روشن‌تر نداریم. البته اگه بذارید یعنی یک حجت به اصطلاح یعنی این هم جعل می‌خواد، اما این رو اقلاب رو ارتقا زده قبول کردن من دارم تحلیل ارتقا زنی. نه اینکه قبول کردند چون حدی ادغامی نه این بریلو که از رو تی. ما ادعا که باعث که ارتقا داده‌شون اقلاب بکرد، هم از طریق در موارد سیبری قانون شده، همه جانات. چهار می‌کنه؟ الان بعضی‌ها از تو فیزیک نه، تو شیمی نه، طریق اضافیت نه. میگه آقا من قرض فردا کنم بیمه خوان بی خود قرض فردا کنی از کجا قرض کنی عربی تو گفته یک تجربه من کردم متوجه بی خود به دوبار بار درست نمی چرا میشه <متصفل> میگه من دوبار تجربه کردم مثل عربی هم گفته قرض نمیشه تصادفاً برای مردم ها عادی زودتر تا قرض پیدا میشه برای مشکک خیلی سرید مثلا مردم به دهکانی که به تقلید نگاه میکنه، دچار غلطمون تا خود موشته، خود موشته چات گیره. اون رساله اناریه که نوشته خیلی غلط نبرسه، اما همان اون رساله بیشتر غلطن تا خود مؤلف رساله. اون حالت چه چیز؟ که غلط خرمید، پس روشن شد چی؟ نه، شخصی هم درگیر اون مشکلی داشت. مسئله موضوع باشه. نه یک مسئله شخصی باشه، مثلا سهرمد کراموندو با. مثلا بحث کنه که این برش مثلا نافره. این که حجیتی داره؟ نخیل خود داره این جهتمال خلاف نداره. این تیناس سخونه نه این اصلا حجیت بست مثلا نیست این هر همون مطلبی است که من عرض کردم اون مطلب این است که در تحرک فردی انبعات فردی از صورت ذنیش این درست مگر قوه و قلبه کن مثلا مرده هست فقط مرده تکون نمیخوره میخوا بخواد شب وجو پیش میخوا بخواد میترسه با اینکه هم داره این قظم نمیتونه تا حرکتی جا رو بکنه با حاضر این قوه اما این قظم در حجیت نیست این حجیت نیست این حجیت نیست بعضی از عبارات مشعر بینه البته این هم به این معانی که تونه قوه ونجل روش بگیره باز هم تخلف داره ما لكن مراد ما از حجیت این نیست اینی که شما میفرم تحرک تربون سوال زنیه بازه اینم باز هجیت هجیت اون است که وقتی پدرش میگه چرا این کار انجام دید چرا پنشون گرفتی که فلوراگاه قولشون آقای قول پنش که بیخود نگرفتی توی من این آدم متوجه نیم من از هر فو سوال اینه انجات آیا میتونم اون بگه تو حق نداری به قول دیگری بعد میام از من سوال میکردی از خود من این میشه که یادگار اگر بازسل قبول کرد میشه که قبول نکرد میشه واقع پس مراد از اینجا که وقتی ما روشن شد، بحث سر چیه؟ ما یک واقع داریم یک قطع داریم این دو تا که با هم تلازم ندارن قطعا کسی این که اگه علم با حد واقع یکیه تطابق حددل علم با حددل واقع که میشه چه قاعد داشیم. ما مخیم بگیم درباب اعتبارات قانونی ما طبق حددل علم حرکت میکنیم این بحث در اعتبارات قانونی لازم نیست به حد الواقع خودمون برسون اما ممکنه نمیشه یه طور دیگه ای اصلا برسومن برسومن بگیم قرد شرد و این را از حالات نفسانی هست اصلا داخل احتجاجات ما نمیشه بله ممکنه به لحاظ حالت نفسانی و یه قانونی تدریم بشه دلاخل قانون اجرا میخواد ممکنه چیه واقعه ممکنه جناب ما ممکن واقعا دو حقیقت نداره که واقع نشه ما چرا همیشه چرا عادت می‌کنیم با فرزینا بحث می‌کنیم با واقعیتش بحث نمی‌کنیم از واقعیت او بله، یه برست واقعیت برست. اجتماعی داریم که اسمش قارونه سوال آیا ما در اعتراض در موارد قانونی حتما دنبال واقعیم یا به صور ذهنیه خودمون اعتماد می‌کنیم جواب بله به صور ذهنیه این سوار ذهنی اگه خاصیم بهش اعتماد بکنیم جن میخواد. اونم قانون میخواد. اون اینجا اینو میگیم یک قانون نامدرون یه قانون یه که این منچهش برمیگرده به سیاره اون قانون نامدون گفته چون از حالات نفسانی انسان قد دیگه ازش چندتر وجود نداره ببینید تریحیت قد کشف قطع یه چیزه حجیت چیز دیگه‌ست اینا اومدن رو با کشفیه که گرفتن مشکل اینجاست رو با کشم چون دیدن کشم زادشه تا دیدن زادشان حجیته ما میخوام بگیم حجیت در مقابل واقع، گرائیه در مقابل واقعه تصور فرمودی حجیت یعنی احتجاج ممکن از مولا احتجاج ممکن نه واقعا هم هست احتجاج بکنه به صبر علمی نه اینکه مطالبه به واقع بکنه اما شما در فیزیک میگه باید دنبال واقع برید. شما باید نقشستون متعلق. به اصطلاحا یا تعلق یا فلان یا ارتباط هر نحیه هست. اون ارتباط با واقع پیدا بکنه و اگر شما بگین من این قانون کشف کردم در فیزیک با 50 تا آزمایش اونم میاد نسبت ارزیابی کنه میگه این 50 تا آزمایش داره هفتاد درصد خوبه داره 100 درصد درو بیخود شما قضیله کردید شما رو به واقع نرسیدید برای 70 درصد وصول به واقع خوبه پس این است که ما آیا در اعتبارات قانونی شد اصول اعتبارات قانونی است دیگه در اعتبارات قانونی باز مثل فیزیک دنبال واقع میریم یا به صورت ذهنیه اعتماد می‌کنیم جواب به صورت ذهنی اعتماد می‌کنیم یکی از این صورت ذهنیه که کشته واضحیت که هیچ ابهام نداره این رو تمام و به طور طبیعی قبول کردن با عنوان یک قانون نانوشته و نامدربن لیکن این مانع نیست که در یک جامعه در خصوص در یک شهر در خصوص در یک مذهب در یک حضر در یک سازمان در یک تشکیلات بگن نه آقا شما دنبال واقع باز باشید هجت ندارید این امکان داره؟ هیچ مشکل نداره؟ یا وسائل علمی پیشتر زیادی کرده؟ شما باید مستقیمند بدونید مجلس این قانون تصیب کرده شما حتی به روزنامه رسی مجلس چرا؟ چون میدونه خیلی راحت انسان چون دومه بزنه مجلس را این مجلس صورت مجلس تمام در فیلم ببینه راحت خیلی واضحه، هیچ مشکل نداره به واقع رسیدن مشکل نداره وقتی به واقع رسیدن مشکل نداره چرا کجا قرار بوده؟ حالا حجت بخواده این حجتی باشه که خمگان قبولش دارن اسمش قطعه و اطمینان هم پداده یا به اصطلاح دیگر علم عرفی علم و خیلی همیشین براتون واضح بگم یعنی وضوح اون علم اصطلاحی است که احتمال خلاف درش نباشه وضوح رو بگن علم و عرفی. در آیاز قرآن هم که علم کار برزشتون مورد وضوحه مسئله اطمینان اون سکون و آرامش نفسه یعنی ممکن از جهات ادراکی 90 درست باشه اما انسان نفسش بیمسل و آرامش داره این هم اسمش ای علم اصطلاحی دارید بعد یک علم و عرفی داریم که اسمش حضور یک اطمینان داریم که اسمش سکون نفس اطمینان نفس و نفس قبول میکنه یعنی همینطوری که در روایت معروف عمر ابن حنظله آمده فئن المجمع خوب تعبیر شده ما کعنما نفس انسان تا مرحله اطمینان نفس رید داره تزلزل داره همین نفس گاهی دیگه نفس به یک جنبه‌ای که آرامش پیدا میکنه به ساحل و رحمان میرسه از تلاطم دریا خودش نجات میده اگر از این تلاطم دریا نجات شده کرد، به ساحل رسید دیگه همه این اسمش شد. بحث این است که در سیره اغلا در اون سیره نانوشته خودشون این کار رو کردن یعنی قطع و علم ارفی و اطمینان رو چون این یک یه چیزی در جامعه کلن هست اگر بنابشه رو اینا محاسبه نکنن جامعه به هم میخوره مشکل نداره نه اجتماع نقیزه این لازم یا اجتماع زده لازم بفرمید اغلا کاشفیجه می کنید کشف هستن شما شکره حکایت می فرمید ما جزو با خودمون داریم می دیدیم اغلا و مسلم باشه راست واقعا از واقعمون نه صلصترانی. اما این که میشه در این محدوده اما چیزی همین که گفتیم محدوده حجه عمل باشه ما که در محدوده آقا قبول نداریم محدوده من ظاهران نه کمی دیر تشی بودیم من عرض کردم در صفحه 6 هم خویی نوشتم و این مطلب ایشون درسته ایشون نوشتن ولای اخا نفی فی كلام بین مقام طریقیت القدر و مقام حجیت این مطلب درسته ان شاء که من الان نمیخوام وارد بحث بشم بحث بوشم برای بحث میدونید میدونم اما چون خود قدر هم... اجازه بدید چون خود قدر هم میدونم عزیزم چون خود قط هم بله. بله. خود قط هم چون گاهی تخلق داره جهل مرکبه بره. لذ... بره. نه این که میگه ذاتی بگه نیمیتونن محضو کنم این که میگه ذاتی بگه نیمیتونن محضو سعیق کنم ذاتی نیست. پس بنابراین خوب دقیقت بذرنایی یعنی من حرف هم که اگر حجیه به قل قط شد مثل وجود به قبل بله قابل جعل و است تنین اغلا برای حفظ جامعه برای حفظ جامعه نه این خی... مثلا فرسان یه من عدم من خود جیه شما اجتماع نقیده این یا اجتماع زده این فرسان علم ما اصلا علم میره اینشترا خواهیم گفت ما علم میره که در باقی اعتبارات قانون سنه موضوعی از اصلا نداریم این شیخ نداریم نه نمیشه این در موضوعات خارجی تاریخی و موضوعی داره مثل علم به اما در قوانین علم به قوانین همیشه نه هم موضوعیه این باید از راههای معین باشه بگی من برم علم از فلسفه پرایزم کلاغ ارزش نداره از که آی خویی میفرمایند آی از حجیت قصد بحث مقدمی است استرادیس است، مقدم است بحث وجر خبر واحد نه بحث علمی اصولی ما هرونی که هر دو مثلا فقط یکیش در یک قانون خاص شرعی یا در یک جامعه معینه یکیش پیش کل اوغلا این مبادا تفی نیست اما با حد الواقع و اصول حد العلم ای به من نگو گفتن در امارات تام ما باه تا ما با این کلمه تام جاه. تا آمل ما با ح واقع در قتم تعامل ما با ح میدونم تعامل اما در اصول تعامل ما با حد دو با صورت اقابتدار تعامل است کرده اما اون پر میرسونه و نمیرسیم. خب حالا؟ صراحت شما وقت خودش دقیقه بین پس خلاصه نقطه اختلاف ما با استاد روشن شد ایشون می‌فرماند بحث قصد یک بحث مقدمی و استفاضی در اصول اما خود جده خبر واحد نه چرا چون خود جده خبر واحد قابل کله ممکن است خبر واحد حجت است ما می‌گیم خطا هم همینطوره فقط اینه یعنی که جهل عدم جهل خورده به سیره کل عقلا به عنوان یک قانون نامدرد از وقته این که قرد ذاتن طریقه به بلکه کشفه این تأثیر داشته در این مطلب. یعنی چون کاشفیت در مثل خبر باهی تام نبوده لذا یک جامعه او رو قبول میکنه یک نظام او رو قبول میکنه یک نظام قبول نبید لگت اما راجع به قرد چون دیگه بشر در حالات خودش بالاتر از قرد چیزی نمیمونه چون چیزی بالاتر از نیست. این رو قبول کرده که حجت باشه، لكن اینطور نیست که بگیم امتنان داره نفی حجیت. امتنان نداره. ممکن از در یک یا قانون خواص شرط خاصی بگه شما باید به واقع برسید. به حقیقت هم عمل لرکن. ممکن این باشه. ایران هم میگه نمیشه چون ذاتیه، مثل فرض امکان امکان اشیای ممکن جدا نمیشه. ما میگیم این طور نیست. خرگم مثل هم،, هم. لكن این روی جهتی عامه عقل قبول کرده. مرد شیخ میگه عامه و غلاغه چون حجت ذاتی آره من حجت احمدی میگم نه عامه و غلاغه به خاطر حفظ نظام قبول کرده چون اگر بنا بشه دیگه حجت نباشه واقعا اختلال نظام را این درست باشه دیگه حال این حجت اینو گفتین اول بار تو بیاو حجت اصلا مفهوم حجیه رو نمی‌دونه. میشه؟ واا، اینکه الان ما اشاره فرمودیم ما یه که ما طب به صورت قصد داریم، این غیر از حجیه است. مثل که من بینم این ماره فرار میکنم این غیر از حجیه است. شما شما دیدن اینکه این, این مار من فرار می کنم، یعنی که عقرب فرار این بحث حجیه نیست که. اون اونجا اونجا هم اگر مراد از ذاتی بودن یعنی به هیچ وجه قابل تخلف نیست خب با قوته وهم با قوه سوره واحده یعنی با تصریری که قوه با واقع نمیکنه انسان همونجا به هم عمل نمیکنه مثل مرده ای که شب پیشش انسان باشه خب قصد داره علم داره که این حرکت نمیکنه لكن قوه واهم بر اون سیطره میکنه قرارش میگیره احساسش می, می, می, می قصد ازش بپرسم میگه صد درصد حرکت نمیکنه یه حاکمی بر اون میاد اگر مراد از اونجا هم حجیت به اون معناست که هر جا اون صورت آمد اصلا باید اثر بارو بشه اونا اونا اصلاً او نه او او عمله اصلا اون حجیت نید اون چیه معنی حجیت <تصفيق> حجیت احتجاج طرف اینه چرا این کار کردی برای این جد؟ این حجیت هست من احس کردم شما میسی که تشکر با ایشون، با ایشون دقت بکنید یه لفع تحرک و سال عمل ما تو جای یک واقع این حجیت نیست یه دفه کاشفیت و طریقیتی شه اینا حجیت نیست اینجا عکس چی بوده ها داره صورت علمی انسان و این تاثیر صورت هم لازمی دائما غلط باشه یک در پنجاه احتمال این سم کشنده باشه همین یک در 50 روزی روش میگیره لازم نیست غلط باشه مواردش فهمونه کنه کن هر کدوم یک معیار خاص و خودشو داره ما هدفمون تو این بحثا اینا رو بندیار رو انجام ندیم. ما حرفمون اینه اصولا مثلا ما وارد این بحث اینکه آیه خویو دیگه را نوشتن حجتشو اقرا این سیانه ما اصولا بحث عزاویدیه بحث من دارم اجمالا صحبت می‌کنم بحث چیزش فدای. حجیت به نظر ما اصولا یک مقوله اجتماعی است. فرار من از سگ و گرگ و فرض کنه اقرب یک مقوله فردیه اصلا مقوله اجتماعی نیست. <تصفيق> همین هم هست خب جیت همینه با... که خب فرد نمی کنه همین نه... هم همینه دیدی چی شد چطوری من دیدم؟ من... زراره گفت من... من من به حرف زراره اسمی پیدا نکردم باری همه که ما رو نمیکنه میکنه <تصفح> نگرد کردی؟ نم روشن شد مثلا پس این مباحث از الان در می آشهاش میگم که ما اعتذر از این ب... مق... از این زاویه کلاوار بحث کنیم بچه‌ها این بحث مرحوم شانسین هم داریم بحث مرحوم شانسین خیلی اثر در اوغلا ایست، البته ان شاء الله امروز میتونیم از... عبارات ایشون می‌خونیم در اینجا ان شاء الله تعالی اصل که ما اعتراض دیگری وارد شدیم خلاصه اون بحث به نظر ما اینه اصولاً سوال حجیت یک مقوله و پدیده فردیست و یک پدیده اجتماعی در پدیده های اجتماعی از اجتماع به اجتماع دیگه فرق می‌کنید خلاصه هم. این با ذاتی بودن و عقلی بودن حرفی قابل گفتن نمی‌سازد. وقتی این رو آيون در چی قبول دارن؟ حرف داره؟ هر کس قبول دارن در مثل خبر واحد تو قضا قبول نکرده. حرف ما اینه که مثل همونه فقط فرض اینه که قد چیزی است که تقریباً عامه عقلا چون بعضی جوامع هستند امکان داره وصول به واقعیت یه قد امن داره برای اولها. عامه عقلا قبول کردن چون به این نتیجه رسیدن ما دیگه از این واضح‌تر نداریم. اگر بنا بشه به این اعتماد نکنیم شخص مکلف بکنیم به واقع این بود مراتب بود و بپرس از شما شما حرفی گفتی به فرض شما پدر من شما تکیه بر گفتی از خان دار مجلس همه پوشم برام مجلس شورا سوال می‌خوایش کنید قا رو گشتی مرادتون چیه تمام تفسیر و خصوصیات این زندگی رو هم میخوره یعنی شامیعه بر می‌خوره اختلال نظام یک چیز ذاتی بودن و عقلی بودن چیز دیگه‌یه خوب دقت بکنید پس پدیده حجیت به ذهن ما در جميع مراتب حجیت در ارتباط قانونی یک پدیده اجتماعی چون قانون پدیده اجتماعی بدون اجتماع حجیت وجود نداره. دقیق اگر شد اجتماعی از این اجتماع با اون اجتماع با اون برای کی؟ لا لا لا احتجاج در مقابل مولاد یکی در مقابل قانون نمیشه مردم نداره که پیش اون مفتح قدرت پس شد اجتماعی خب دقیقا پس یک مطلب این و اما مطلب دیگری که ایشون فرمودن به علم کلام میخوره که از کردم اطلاعشن در کتابی که فرموده ارز شد این من کرارن ارز کردم این یک خلفی پیش شده البته به طور کلی هر وقت ما بخویم در اصول بحث بکنیم ریشه بحث ما در اصول در اینجور مطالب در تنجزه هر وقت بخویم بحث رو به کلام بزنیم ریشه بحث در اونجا در عقوبت و احکام جزائیه ما عرض کردیم که انصاف قضیه نه اینکه فقط با مسائل دو تا علم با هم تداخل پیدا نکنند مگر اون مقداری که هر کدوم احتیاج بهش حتی اصطلاحات دو تا علم هم با هم تداخل پیدا نکنند مثلا در بحث براه هم گفتن قبعه اقابه لابیان این تغییر کلامی سال و مرادشون اصوله هم عقوبت و بیان و لابیان اصطلاحات کلامیه. باید در اونجا بگن مجرد شک منجز نیست احتمال منجز نیست کلمه منجزه یک آقای هم خب میدونید که فرماینده حق و طائع اون حق و هم اصطلاح کلامیه هم قهقه قابل بیان اصطلاح کلامیه هم حق و طائع اصطلاح کلامی ما اگر بخوایم مثل... میذنین مراد اونها اصوله من خب ما نمیذنین یعنی اصول بودن چه معنی داره مرادشون از قهقه قابل بیان براءت اصول در ذات در اصوله اما ما معتقدیم اضافه بر این که باذ مواضع عین با هم خلف نشن اضافه بر او حتی اصطلاحات دو علمان با هم خلص نشن که روشن و واضح باشه زاویه دید ما تنجزه زاویه دید اونها عقوبته چرا بحث قرد در زاویه دید اونها میاد همون نقطه‌ای که در تنجزه فقط ما عرض کردیم احکام و اعتبارات قانونی خوب دقیقه رو کنیم بعد از تنجز موضوع احکام جزایی میشه یعنی شما اگر نمیدانید که فراسی یک دوی رفتیم فراسی نمیدونید توی اینجا قاملی که نمیشه توقف کنار خیابان کرد نمیدونید دلیل موضوع ورده سازه ورده این شرش ای آشان نیست یه علامات توقف ممنون هم و فارک ممنون هم نیست مرداله که استادید میگن برای شما عقوبت نیست یعنی به اصطراف به خاطر جه شما چرا چون با این جهلی که داشتین اگر محضور باشین تنجز نیامد وقتی تنجز نیامد احکام جزایی هم بار نخواهد شد احکام جزایی رو در اصطلاح قدیم ما میبرن احکام جزائی مختلف یه زندان هست پول هست ممنوعیت از سفر هست ممنوعیت از شما این هم احکام جزائی هست مختلفی ما در اصطلاح قدیم به جای کلمه احکام جزایی میگفتن اقوب اگه روزهنگره این نما یغزی ها نماز قضا میکنه عقوبتا قضا را عقوبت قرار میده روشن شو مطلب پس اینه که این رو کلام گرفتن این نکتهش اینه آیا غف کافی است برای تنجس اگر کافی بود عقوبت درش مترتب میشه چون عقوبت در احکام منجزه متعتب میشه نه قد کافی نیست ما باید به واقع برسیم پس عقوبت برش مترسل نمیشه این که این مسئله کلامی شد ما ماله مبدعا معاید نیست این مسئله برش مترسل شد نکتش اینه اگه کلامیه نقط... پس یک زیربنای اصولی داره یک نتیجه گیری کلامی داره زیربنای اصولیش تنجزه اعتبارات قانونی به بقع... قد بقع... ما واقع نموحل قد که بذار که میشه با اسمیان تنجد اگر تنجد شد میشه حکم منجز اگر حکم منجز شد مخالفت کردیم ققوبت داره حالا بشه یه ققوبت بردنیم احکام جدایی پس اساس بحث یک مسئله قصولیست به نظر ما و یک آثار کلامی هم داره اصل مسئله اصولیش تنجد اعتبارات قانونی به قطع مخصوصا با اون مبنیه که شیخ انساریتون از هر راهی باشه از هر سعی باشه برای هر شخصی باشه اگر تنجز پیدا کرد بحث کلامی هم میاد آیا از نظر, ش... به به اصلاح... از نظر به اصلاح زواهر شریعت در قیامت یا قوانین جزایی در دنیا آیا بر مجرد قرد هم به اصطلاح احکام جزایی بار میشه یا نه میان میگن آخه شما از کجا حاصل شده؟ اگر سبب درست داشت احکام جزایی بار میشه، منتگذ میشه اگر نداشت نمیشه پس این مسئله از این زاویه، زاویه کلامی شده که چون نازره به عقوبته یا نظر به احکام جزایی مسئله اصولی حالا از کردیم مرموم استاد چون حدیعتش عقلی میدنن شیخ، ذاتی میدنن میگن این برس اصولی میدن او ذاتیه دیگه،, دیگه برس اص اما اگر این رو ما از قبیل خبر واحد قرار دادیم خبر واحد در یک جامعه معین و قانون معین حجه قدر در تمام اوغلا اوجه پیش همه اون ها اگر یک بحث دیگری هم سابقا من کردم فرض کنیم ما قائل هستیم که قدر حجتی ذاتی است پس یا بحث از قدر بحث اصولی نیست این درست نیست بحث یک بحث علمی لازم نیست اعتقاد من نگاه بکنیم چون این مطرح شده که حجتی ذاتی است یا حضیتش اعتباری چون مطبر شده این صلاحیت طرح در اصول داره ولو مبنای من اینکه اوجه مبنای من کافی نیست مگر رو بعضی از معانی که در باب تعریف علم گفتن که قبولش مشکله و صلی الله علیه محمد و حالی